أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ما کافران از چه چیز از یک دیگر سوال می کنند عن نبئ العظیم از خبری بزرگ هم فيه مختلفون همان خبری که آنها در آن اختلاف دارند کلا سيعلمون چون این نیست که آنها میاندیشند به زودی خواهند دانست ثم باز هم چنین نیست به زودی خواهند دانست الم نجعل آیا زمین را بستری برای آسایش شما قرار ندادیم والجبال اوتادا و را میخای آن قرار ندادیم و خلقناکم ازواجا و شما را جفت آفریدیم و جعلنا نومکم صباتا و خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم و جعلنا اللیل لباسا و شب را پوششی برای شما قرار دادیم وجعلنا جعلنا معاشا و روز را وسیل ای برای زندگی و معاش قرار دادیم و فوقكم سبعا شدادا و بر فراز شما هفت آسمان دشوار بنا کردیم وجعلنا جعلنا سراجا و هاجا و خورشید را چراغی درخشان آفریدیم ونزلنا من المعصرات مان جاج و از عبرهای بارانزا آبی فراوان فرو فرستادیم لنخرج به حبا ونباتا تا به و گیاه بسیار برویانیم ونو باغهایی پر درخت با آن آب پرورش دهیم ان یوم الفصل كن میقاتا بیگمان روز داوری میعاد همگان است وم ینفخ فی الصور فتأتون فواجا روزی كه در سور دمیده میشود صفات شما گروه گروه به محشر می آیید و فتحت السماء فکانت ابواب. و آسمان گشوده می شود، پس دروازه دروازه می گردد و سیرت الجبال فکانت سراب. و کوه به حرکت آیند، پس چون سراب گردند ان جهنم كانت مرصادا و بیگمان جهنم كمینگاهی است للطاغین معابا محل بازگشت برای سرکشان است لابثین فیها احقابا مدت زمانی دراز در آنجا بمانند لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا و در آنجا نه چیز خونکی میچشند و نه آشامیدنی گوارایی خواهند داشت الا حمیما و غساقا جز آبی سوزان و مایه ای که چرک و خون است جزاء وفاقا این کیفری است مناسب و در خور اعمالشان. انهم كانوا لا یرجون حسابا زیرا که آنها هیچ امیدی به روز حساب نداشتند. واکذبو بآیاتنا کذابا و آیات ما را به شدت تکذیب کردند. واکل شیئن احصیناه کتابا و ما همه چیز را در کتاب لوح محفوظ به شمارش نوشتیم فذوقو فلن نزیدکم الا عذابا پس کیفر اعمال خود را بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی افزاییم این للمستقین مفازا بیگمان برای پرهیزگاران کامیابی است. حدائق و اعنابه باغهای میبه ها و تاکستانها و کواعی به و هوریانی جوان و همسن و سال و کأسن و جامهای لبریز و پیاپی از شراب پاکیزه بهشت لا فيها در آنجا نه سخن می میشنوند و نه دروغی این پاداش از جانب پروردگار توست و بخششی در خور آنهاست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 ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ فَمَنْ شَاءَ اَتْخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مآباست. آن روز حق است پس هر کس که بخواهد بازگشت گاهی به سوی پروردگارش برگزیند اِنَّا اَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و الكافر یا ليتني كنت توابا براستی ما شما را از عذابی نزدیج بین دادیم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 و سوگند فرشتگانی که در اجرای اوامر الهی بر یکدیگر دیگر سبقت می گیرند و سوگند به فرشتگانی که به امر الهی کارها را تدبیر می کنند یوم ترجف راجفت تتبع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 قالوا تلك اذا كروه خاسره كوند اگر چنین وعده‌ای درست باشد آنگاه آن بازگشتی زیانوار است فاننا هي زجره واحده فاذا فا هم بالساهرا پس آن بازگشت تنها با یک بانگ مهیب است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 به سوی فرعون برو که او تغیان کرده است و به او بگو آیا می خواهی از کفر و گناه پاک شوی؟ و من تو را به سوی پرور گارت هدایت کنم تا از او بترسی و فرمان شوی؟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 و لیلها و, و شبش را تاریک و روزش را روشن گردانیدعد و زمین را بعد از آن گسترانید منها ماءها و, و از آن آب چشمه ها و چاه ها و چراگاهش را بیرون آورد.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 دران در آن روز انسان تمام اعمال و تلاش های خود را به یاد میآورد و جهنم برای هر بیننده ای آشکار می شودود من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 و نفس را از هوا و هوات باز داشته باشد و ان الجنه هی قطعا بهشت جایگاه اوست یسالونک عن الساعه ایان المرساها ای پیامبر درباره قیامت از تو میپرسند که در چه زمانی واقع می شود سین انت من ذکراها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 چهره در هم کشید و روی برگرداند ان جاءه از اینکه آن نابینا به نزدش آمد و ما يدريك لعلّه يزكه. و ای پیامبر تو چه میدانی شاید او از گناهانش پاک شود او را یا پند گیرد و این پند به سودش باشد اما من اما آن کس که از ایمان بنیازی میورزد تلمت پس تو به او روی می‌آوری و الا در حالی که اگر او خود را از کفر پاک نسازد ایرادی بر تو نیست و اما من اما کسی که شتابان به سراغ تو می آید و از الله می ترسد پس تو از او غافل میشوی و به دیگران می پردازی هرگز چونین نیست بیگمان این آیات تذکر و یادآوری؟ فمن شاء پس هر کس بخواهد از آن پند گیرد در صحیفه های ثبت سبت است مرفوعت مطهره در جایگاهی بلند پایه و پاکیزه از پلیدی بی در دست سفیران وحیه من برره که بزرگوار و نیکوکارند قتل الانسان ما مرگ بر انسان کافر چه ناسپاس است من ای شیء خلق الله او را از چه چیز آفریده است من نطفه خلقو فقدره او را از نطفه ناچیزی آفرید و سپس موزونش ساخت سم آنگاه راه را برایش آسان نمود سم آنگاه بعد از پایان عمر او را میراند و در قبر پنهان نمود سپس هرگاه که بخواهد او را زنده می کند و بر می انگیزد هرگز چنین نیست که او میپندارد او هنوز آنچرا که الله فرمان داده به جایی نیاورده الى طعامه پس انسان باید به غذای خویش و آفرینش آن بنگرد ما آب فراوان از آسمان فرو ریخ سپس زمین را از هم شکاف دیم. ف بس نشیها حب در آن دانه های فراوان رویاندیم و عین و, و انگور و سبزی سبزیخوراککی بسیار و ذتون و, و زیتون و نخل ووحدا اینقاغ و, و باغ انبوه و پردهه و فاكهه و ابا و انواع میوه و علوفه پدید آوردی متاعاً لكم ولانعامكم همه اینها برای بهره گیری شما و چهارپایانتان است فاذا فا جاءت پس هنگامی که آن صدای مهیب قیامت فرا رسد یوم یفر روزی که انسان از برادرش میگریزد و امه و ابیه و از مادرش و از پدرش و صاحبته و بنیه و از زنش و پسرانش نیز میگریزد. لِکُل امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ در آن روز هر کس را کاری است که او را به خود مشغولش دارد. اُجُوهٌ فِي يَوْمَئِذٍ در آن روز گشاده و روشن است. باحکه مستبشر بخاطر نعمت و رحمت الله خندان و شاد است و وجوهی يومئذ علیها وبر و چهرهایی در آن روز قوارالود است سر و هنگا سیاهی و تاریکی آنها را پوشانده است هم الفجره اینان هم همان کافران بدکردارند بسم الله الرحمن الرحیم اذا شمس کورت هنگامی که خورشید در هم پیچیده شود و و هنگامی که ستارگان بینور شوند و و هنگامی که کوه ها به حرکت درآیند و اذا و هنگامی که ماد شتران باردار رها شوند و اذا و هنگامی که جانوران وحشی گرد آورده شوند و ایزا البحار سجیرت و هنگامی که دریاها جوشان و برفروخت شود و ایزا نفوس زوجت و هنگامی که روح ها قرین شود و ایزا الموعودت و, و هنگامی که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود بی ایزا به کدام این گناه کشته شده است و ایزا صحف هنگامی که نام های اعمال گشوده شود و ایزا هنگامی که پرده از روی آسمان برگرفته شود و ایزا الجحیم هنگامی که دوزخ افروخته و شعله برگردد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 پس سوگند به ستارگانی که باز میگردند. گردند شتابان حرکت می و از نظر پنهان میشوند. و سوگند به شب هنگامی که تاریکیش کاست شود و پشت کند و صبح و سوگند به صبح هنگامی که بدمد بیگمان این قرآن سخن فرستادی بزرگوار است لی قوت عندد زی العرش مکین که مقتدر و نیرومند است و نزد خداوند صاحب عرش مقام و منزلت والایی دارد ثم در آسمان ها مورد اطاعت فرشتگان و امین وحی است و ما صاحب کن ای مردم هم نشین شما محمد دیوانه نیست ولقد رآه بالعفق المبین راستی او را در افق روشن دیده است و ما هو علی الغیب بضنین و او بر آنچه از طریق غیب به او وحی شده بخیل نیست و ما هو بقول شیطان رجیم و این قرآن گفته شیطان رانده شده نیست فاین فا تذهبون پس به کجا میروید این هو الا ذکر للعالمین این قرآن چیزی جز پند و اندرز برای جهانیان نیست لمن شاء منکم برای کسی از شما که بخواهد راه راست در پیش گیرد وما ما إلا الا یشاء الله رب العالمین و شما نمی خواهید مگر آنکه پروردگار جهانیان بخواهد بسم الله الرحمن الرحیم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 چه چیزی تو را نسبت به پروردگار کریمت مغرور ساخته است الَّذِي آنکه تو را آفرید آنگاه شکل و اعضایت را تمام کرد سپس معتدل گرداند فی ای صورت ما شاء و به هر شکلی و صورتی که خواست تو را ترکیب نمود. بل <تصفيق> بالدین هرگز چونی نیست که شما گمان میکنید بلکه شما روز جزا را می میکنید. و ان علنکم لحافظین و بیگمان نگهبانانی از فرشتگان بر شما گمارده شده که نبیسندگانی بزرگوار بزرگوار هستند آنچه را انجام می دهید می دانند و اعمال نیک و بد شما را یادداشت داشت می کنند این الابرار لفی مسلمان نیکان در نعمتهای بهشت هستند و ان الفجار لفی جحیم و یقینا بدکاران در آتش جهنم اند یصلونها روز جزا به آن درآیند و بسوزند و ما هم عنها بغائبین و هرگز آنان از آنجا غایب نباشند و ما ادرا کما الدین و تو چه میدانی که روز جزا چیست ثم ما أدراك تو چه میدانی که روز جزا چیست يوم لا تملك نفس لنفس شئا والأمر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 الذي اكتالوا على الناسوفون کسانی که چون برای خود از مردم پیمانی می کنند، حق خود را کامل میگیرند وإ كلهم اودن هم میخصقون و هنگامی که میخواهند برای آنان پیمانی یا وزن کنند.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 یوم یقوم الناس لرب العالمین همان روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند کلا <تصفيق> این کتاب الفجار لفی سجی هرگز چون نیست که کافران پنداشتند حقا که نامی اعمال بدکاران در سجین است و ما ادراک ما سجین و تو چه دانی که سجین چیست؟ کتاب مرقوم است که اعمال بدکاران در آن نوشته شده است ویلون یومئذی در آن روز بای بر تقذیب کنندگان الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ آنان که روز جزا را انکار و تقذیب می کنند وَمَا يُكَذِّبُ لا كُل معتدي اثيم کسی آن روز را تکذیب نمی کند الا تتلى عليه اياتنا قال چون آیات ما بر آنها تلاوت شود گوید این افسانه های گذشتگان است كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هرگز چونی نیست که آنها گمان میکنند بلکه به سبب آنچه کرده اند بر دلهایشان زنگار بسته است كلا انهم عند ربهم يومئذ لمحجوبون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 ثُمَّ يُقالُ هذا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ آنگاه به آنها گفته می شود این آتش همان چیزی است که آن را تقزیب می کردید کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيّین هرگز چونی نیست که آنها میپندارند بیگمان نامه اعمال نیکوکاران در الیین است و ما ما علیون و تو چه دانی که الیین چیست؟ کتاب کتابی است که اعمال نیکوکاران در آن نوشته شده است یشهده المقربون که مقربان درگاه الهی آن حاضر شوند و گواهی دهند این الابرار لفی نعین همانانی کوکاران در نعمتهای بهشت هستند علی الارائک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 تاومسک وفیذلی سلیت نفصل متنافزون مهری که بر آن نهاده شده از مشک است و در این شراب و نعمتهای دیگر بهشت مشتاقان باید بر یک دیگر پیشی گیرند و میزجموم تصنی. و آمیزه اش از تسنیم است یشرب بها المقربون همان چشمی که مقربان درگاه الهی از آن مینوشند این الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا همان کسانی که جرم و گناه کردند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 چون به سوی خانواده خود باز می گشتند، شادمان و خندان باز می گشتند. و رأوهم قالو ها و هنگامی که مؤمنان را میدیدند، میگفتند: بیگمان اینها گمراهانند.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 ل ابر تختهای آراسته نشسته و مینگرند هل زوب الكفار ما كانوا یسعلون آیا کافران پاداش آنچه میكردهاند دریافت كردهاند بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا بخشنده مهربان ایده السماء شقت هنگامی که آسمان شکافته شود و لربها و حقت. و به فرمان پروردگارش گوش دهد و تسلیم شود و سزاوار است که چنین کند و الارض مدت و هنگامی که زمین گسترده و هموار شود ولقت ما وتخلت و, و هرچه را درون خود دارد بیرون ریزد و توهی گردد و لربها وحقت و, و به فرمان پروردگارش گوش دهد و تسلیم شود و سزاوار است که چنین کند يا ایوها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقیه ای انسان بیگمان تو در راه رسیدن به پروردگارت سخت تلاش و کوشش میکنی پس او را ملاقات خواهی کرد فَأَمَّا من اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ پس اما کسی که نامی اعمالش به دست راستش داده شود فَسَوْفَ يُحَاتَبُ حِسَابًا يَسِیرًا به زودی به حسابی آسان محاسبه میشود شبد وَيَنْقَلِبُ اِلَىٰ اَهْلِمِ مَسْرُورًا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 و به آتش جهنم شعلور ور درآید ایننه او در دنیا میان خانوادی خود شادمان بود اننه ظن به راستی او گمان می‌کرد هرگز باز نخواهد گشت بلا ان ربه كان به بصیرا آری همانا پروردگارش نسبت به او بینا بود فلا اقسم بالشفق پس به شفق سوگند میخورم واللیل وما وثق و سوگند به شب و آنچه را فرو میپوشد والقمر الی اتسق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 وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَهنگامی که قرآن بر آنها تلاوت شود سجده نمی‌کنند بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بلکه کسانی که کافر شدند پیوسته آیات الهی را تکذیب می‌کنند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 اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ ممنون مگر کسانی که ایمان آوردهاند و کارهای شایسته انجام دادهاند که برای آنها پاداشی قط نشدنیست بسم الله الرحمن الرحیم قسم به آسمان که دارنده برج هاست و اليوم الموعود و روز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 خندقهای پر و افروخت از هیزمهای بسیار ایز هم علیها قعود هنگامی که بر کناری آن نشسته بودند و هم علی ما بالمؤمنین شهود و آنان آنچه را با مؤمنان انجام می‌دادند، تماشا می‌کردند. وما نقموا منهم الا أن یؤمنوا بالله العزیز الحمید و هیچ ایرادی از آنان نگرفتند جز اینکه به خداوند پیروزمند ستود ایمان آورده بودند الَّذِي له مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله الله علی كل شیئین شهید همان کسی که فرمان روای آسمانها و زمین از آن اوست و خداوند بر همه چیز گواه است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 پس برای آنها عذاب جهنم است و برایشان عذاب آتش سوزان است. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجِرِي من تحتها هَلْاَنْهَارِ ذَلِكَ الْفَوْزُ همانا برای کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند باغهایی از بهشت است که نرها زیر درختان آنجاری است و این کامیابی بزرگ است این نبقش ربی کل شدید به راستی مجازات و فرو گرفتن پروردگارت سخت است. انَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ همان اوست که آفرینش را آغاز می‌کند و دوباره بعد از مرگ باز میگرداند و هو الغفور ودود و او آمرزنده دوستدار است للعرش المجیب صاحب عرش مجید است فعال لی ما یرید آنچه را بخواهد انجام میدهد؟ هل اتا که حدیث الجنود ای پیامبر آیا داستان لشکرها به تو رسیده است فرعون و ثمود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 بل هو قرآن بلکه این قرآن مجید است في لوح محفوظ که در لوح محفوظ نگاشته شده است بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق. سوگند به آسمان و سوگند به تارق و ما ادراکم الطارق و تو چه میدانی تارق چیست؟ النجم همان ستاری درخشان است إن كل نفس لما حافظ. هیچ کس نیست مگر آنکه بر او نگهبان و محافظی از فرشتگان است پس انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است پولقمن ماء اندافق از یک آب جهنده آفریده شده است یخرج من بین الصلب والترائب که از میان پشت و سین بیرون می آید اننه علی رجعه لقادر گمان او بر باز گردانیدن او پس از مرگ قادر است یا اوم روزی که نهانها آشکار می شود من او ولا ناص پس او را هیچ نیرو و یاوری نیست وسمائذتی سوجان به آسمان پرباران. و سوگند به زمین پرشکاف. این نهول فصل. بیگمان این قرآن سخن جدا کننده حق از باطل است. و آن سخن حزل و بیهوده نیست. این هم یکی دون کیده. بیگمان آنها پیوسته حیله و نیرنگ میکنند و اكيد و من هم حیله و تدبیر میکنم و مهل للكافرین انهلهم رویدا رو پس کافران را مهلت بده اندکی آنان را رها کن بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. سبح اسم نام پروردگار بلند مرتب را به پاکی یاد کن. الذی خلق فسوا. همان که آفرید پس درست و استوار ساخت. و, قدر و همان کسی که اندازه گیری کرد پس هدایت نمود. والذی اخرج المرعا و آن کسی که چرا گاه را رویانید فجعله غثاءا حوی سپس آن را خشك و سیاه گردانید سنقرئك فلا ما بزودی قرآن را بر تو میخوانیم پس هرگز فراموش نخواهی کرد مگر آنچه که خدا بخواهد همانا او آشکار و نهان را میداند. ونو يّ و ما تو را برای راه آسان توفیق میدهیم. فذكر این پس اگر پند مفید باشد پند سذكر من بهزودی کسی که از خدا میترسد پند میپذیرد ویتجنبها و, و بدبختترین مردم از آن دوری میگزیند الذي النار همان کسی که در آتش بزرگ جهنم در خواهد آمد ثم لا ولا سپس در آن آتش نمی میرد و نه زنده می‌ماند قد افلح من یقینا کسی که خود را پاک و تزکیه کند رستگار شد و نیز کسی که نام پروردگارش را یاد کرد پس نماز گذارد بل تؤفیرون الحیات الدنیا بلکه شما مردم زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهید وَالْآخِرَتُ و ادقا در حالی که آخرت بهتر و پاینده تر است اِنَّهَا ذَا لَفِ الصُحُفِ الْاُولَةِ به راستی این پندها در صحیفه های پیشین نیز بود صحیفه های ابراهیم و موسی صحیفه های ابراهیم و موسی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشندی مهربان الاتاک حدیث الغاشیه ای پیامبر آیا خبر غاشیه به تو رسیده است اجوه یوم ایز خاشعه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 از چشمه بسیار داغ به آنها نوشانده می شود لیسه لهم طعام الا من ضریف تعامی جز از ذریع ندارند لا یسمن ولا یغنی من جو. که نه آنها را فر بکند و نه دفع گرسنگی نماید وجوه جوه یومئذ ناعمه و چهره هایی در آن روز شاداب و تازه باشند لسعیها راضیه و از سعی و تلاش خود خوشنودند فی جنت عالیه در بهشت برین هستند لا تسمع فيها لادیه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 و نمارق مصخوفه و پشتی ها بالش های منظم چیده شده و زرابی مبسوفه و نیز فرش های گران گسترده شده است افلا الى الابل خلقت؟ آیا کافران به شطر نمی‌نگرند که چگون آفریده شده است و الى و به آسمان نمینه گرند که چگونه برافراشته شده است و الجبال و به کوه ها نگاه نمی کنند که چگونه محکم بر زمین نصب شده است وائل و به زمین نمینه گند که چگونه گسترده شده است تكر ملکل. پس ای پیامبر پند بده که تو تنها پند دهنده‌ای لست علیهم بمصیطر تو بر آنها مسلط و چیره نیستی که بر ایمان مجبورشان کنی الا من و مگر کسی که روی گرداند کافر شود فیعذبه الله العذاب الأكبر پس خداوند با عذاب بزرگ او را عذاب میکند اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ همانا بازگشت آنها به سوی ماست ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ سپس بی گمان حسابشان نیز با ماست. بسم الله الرحمن الرحیم و به صوب و لیال و به شبهای دهگانه و الشفع والوتر و به زوج و فرد و سوگند به شب هنگامی که حرکت می کند و می روید. آیا در این چیزها سوگندی برای صاحب خرد نیست؟ ای پیامبر، آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ ارم ذات العماد ارم که دارای ستونها و قامت بلند بودند ال لم مثلها که همانند آن در شهرها آفریده نشده بود؟ و ثمودالذين جاب الصخر بالواد. و نیز قوم سمود آنهایی که صخرهای سخت را از کنار وادی می تراشیدند و برای خود میساختند می ساختند. و فرعون ذل آوتاد. و فرعون ساeb میخا. الذين طغوا في البلاد همان کسانی که در شهرها طغیان و, و سرکشی کردند فأكثروا اکثروا فيها الفساد پس در آنها بسیار فساد به بار آوردند فصَبَّ عَلَيْهِم رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاب انگاه پروردگارت تازیانی عذاب را برانان فرو آورد این ربک لبالمرصاد یقینا پروردگار تو در کمینگاه است فانما الانسان الى مابتلاه ربه فاكرمه فا ونعمه فيقول ربي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 و اما هنگامی که او را بیازماید پس روزیش را بر او تنگ ناامید می شود و میگوید پروردگارم مرا خار کرده است کلا بل تکریمون هرگز چونی نیست که شما میپندارید بلکه یتیم را گرامی نمی دارید ولا تحبون على طعام المسكين و یکدیگر را بر اتقام مستمندان ترغیب و تشویق و وتأكلون التراث أكلا لما و میراث را هریسا نهمیخورید و حق دیگران را نمیدهید و تحبون المال حبا جمع و مال و ثروت دنیا را بسیار دوست دارید کلا اذا دکت الأرض دکن دکا هرگز چونی نیست که شما گمان می کنید. هنگامی که زمین سخت در هم کوبیده شود و هموار گردد و جاء ربک و الملک صفا صفا و پروردگارت برای داوری بیاید و نیز فرشتگان صفت در صفت بیایند و جیئه یوم اذین بی جهنم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 می گوید ای کاش در دنیا برای این زندگیم چیزی از پیش فرستاده بودم فیوم لا عذابه احد پس در آن روز هیچ کسی همانند عذاب او عذاب نمی و احد و هیچ کس همچون بند کشیدن او کسی را بند نکشد یا ایت هن نفس المطمئنه ای روح آرام یافته ارجعی الی ربك, ربك, ربك راضیتا مرضیه به سوی پروردگارت بازگرد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 لا اقسم البلد. این شهر و انت حلن بها البلد و تو در این شهر ساکنی و والد و ما ولد. و سوگند به پدر و فرزندانش لقد خلقنا الان یقینا ما انسان را در رنج آفریدیم آیا او گمان میکند کند هیچ کس بر او توانا و قادر نیست؟ میگوید مال زیادی را تباه و خرج کرده ام ایحسب ان لم يرهو أحد آیا میپندارد هیچ کس او را ندیده است نجعل له آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و لسانا و شفتین و یک زبان و دو و هدیناهن نجدین و او را به دراه خیر و شراح نمائی کردین فلقت حمل عقبه پس به گردنی سخت قدم نگذاشت و نیامد و ما ادراک و تو چه گردنی سخت چیست تطوع قربه کردن برده است او اطعام یا تعام دادن در روز قحتی و گرسنگی یتیم من قربه یتیمی از خویشاوندان او مسكينا ذامه تربه یا مستمندی خاک نشین را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 اینان اهل سعادتند هم اصحاب المشأمه و کسانی که به آیات و نشانه های ما کفر وزییدند آنان اهل شقاوتند برانها بر آنها از هر سو آتشی سرپوشیده است که راه فرار ندارند. بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها سوگند به خورشید و روشنی آن والقمر القمر اذا سلاها پس سوگند به ماه هنگامی که بعد از آن درآید وان اذا جلاها و سوگند به روز هنگامی که آن را روشن و جل کند و اللیل یرشاها و سوگند به شب هنگامی که او را بپوشاند و و ما بناها و سوگند به آسمان و به آن که آن را بنا کرد و الارض و ما طحاها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 محققا هر کس نفس خود را تسکیه و پاک کرد رستگار شد و خواب من دستاها و یقینا هر کس که آن را با گناه آلود ساخت نومید و زیانکار شد سمود قوم سمود از روی سرکشی و تقیانشان پیام برشان را تکذیب کردند از آنگاه که شقی ترینشان برای اقدام به جنایت برخواست فقال لهم رسول الله ناقت الله و پس پیامبر خدا صالح به آنها گفت ما شتر خدا را با آبش خورش وا گذارید کذبوه فعقروا ما فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولی آنها او را تکذیب کردند آنگاه ماده شتر را پی کردند پس پروردگارشان به سبب گناهانشان بر سرشان عذاب آورد و با خاک یکسان کرد و خداوند از سر انجام آن بیم ندارد بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان واللیل اذا يغشا سوگان به شب هنگامی که همه چیز را بپوشاند وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّهُ وَسَوْگَنْد بِرُوز هنگامی که آشکار شود وَمَا خَلَقَ الْذَكَرَ و وَسَوْگَنْد به آنکه نر و ماده را آفرید اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّهُ که یقینا سعی و تلاش شما مختلف است. فأمّ من احف وتق پس اما کسی که در راه خدا بخشید و پرخیزگاری کرد وفض قابلخصنا و سخنان نیک را تصدیق کرد فنو سوول الیوسرا پس ما او را برای راه آسان توفیق می دهیم. و اما من بخیل واستغنا استومنه. و آمما کسی که باخ بر و بینی عزی تلبید. و کذب و نیز سخنانی کرد. فتنو یسره لیل پس بزودی او را برای راه دشوار سوق می دهیم. و ما یغنی عنه ماله اذا ترده و هنگامی که سرا جهنم شود مالش به حال او سودی نخواهد داشت بسلمان هدایت و راهنمایی کردن بر اخته ماست و این لنا للآخرت والاولا و محققا آخرت و دنیا از آن ماست. نارا پس من شما را از آتشی شعلور بیم دادم. لا إلا به آن آتش کسی جز بدبخت ترین مردم در نیفتد، الذي كذب همان کسی که آیات ما را تکذیب کرد و, و به زودی پرخیز کارترین مردم از آن دور داشته می شود الَّذی ماله همان کسی که مال خود را در راه خدا می بخشد تا پاک شود و مال احد عنده من نعمت تجزا و هیچ کس را بر او نعمت به حقی نیست تا بخواهد با انفاق پاداش دهد مگر برای به آوردن وجه و خوشنودی پروردگار برترین و به راستی خشنود خواهد شد بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهبان و سوگند به آغاز روز و اللیل اذا و سوگند به شب هنگامی که آرام گیرد ما ودع که ربک و ما قلا که <تصفيق> پروردگارت تو راوا بانه و بر تو خشم نگرفته است ولل آخرت خیر لکه من الاولا و مسلما آخرت برای تو از دنیا بهتر است ولسوف يعطی که ربک فتربا و به زودی پروردگارد به تو انقدر عطا کند که خوشنود گردی که آیا تو را یتیم نیافت پس پناه داد و وجد که و تو را راه نایافته و سرگشت یافت پس هدایت کرد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 و نعمت های پروردگارت را بازگو کن بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان نشرح لك صدرك. ای پیامبر آیا ما سین را برایت نگو و باحنا عن کوویزات و بار سنگین تو را از دوش تو برنداشتیم الذي ظهرك. همان باری که بر پشت تو سنگینی می کرد و را سنالك و نام و آوازی تو را بلند ساختیم. مع پس مسلما با هر دشواری آسانی است انما مع با هر دشواری آسانی است فإلا فرغت پس هنگامی که از کار و امور دنیا فارغ شدی به عبادت پروردگارت بکوش و الی ربک فرد و به سوی پروردگارت راقب شو بسم الله الرحمن الرحیم و التین و الزیتون به انجیر و زیتون و طور و سوگند به تور سینا و هذا البلد الامین و سوگند به این شهر امن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقینا ما انسان را در بهترین صورت و هیئت آفریدیم ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ سپس او را به ترین مرحله برگرداندیم الا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند پس برای آنها پاداشی قط نشودنی است فما یکلمک بعد بالدین پس ای انسان چه چیز بعد از این همه دلایل روشن تو را به تکذیب روز جزا می دارد الله باحکم الحاکم آیا خداوند بهترین داوران به حکم مطلق نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان اقرأ بسم الذی خلق ای پیامبر، بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید خلق الانسان من علق. همان خدایی که انسان را از خون بسته آفرید اقرا و ربک بخوان و پروردگارت از همه بزرگوارتر است الذی علما بالقلم همان کسی که به وسیله قلم نوشتن ناموخت علم الانسان ما لم يعلم به انسان آنچه را که نمیدانست آموخت ال النسان که انسان تغیان و سرکشی کشی می کند چون خود را بینیاز ببیند إن إلى ربك بازگشت همه به سوی پروردگار توست ای پیامبر آیا دیده ای آن کسی که باز می دارد عبدا اذا صلا بنده ای را هنگامی که نماز میخواند خاند ارائیت این کان علالهده به من خبر بده اگر این بنده بر راه هدایت باشد او امر بیتقوه یا مردم را به پرخیزگاری فرمان دهد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 آیا نمیداند که مسلمن خداوند همه اعمالش را می‌بیند؟ بیند؟ کلا لئن لم ینتهی لنسفعن بین ناقیه چون نیست که او گمان می کند. اگر باز نیاید محققا ناسی را خواهیم گرفت و کشید ناقیت کذبت خاطئه همان پیشانی دروغگوی خطاکار را پس باید اهل مجلسش و همدمانش را بخاند سندعو ما نیز به زودی آتش را فرا می خانیم كلا لا وقترب. چون این نیست که او می پندارد هرگز او را اطاعت نکن از کن و به خداوند جوی بسم الله الرحمن الرحیم اینا انزلناه فی همانا ما آن را در شب قدر نازل کردیم و ما ادراک ما لیلت القدر و تو چهدانی شب قدر چیست؟ لیلة القدر خیر من الف شهر شب قدر بهتر از هزار ماه هست تنزل الملائکت و فيها بإذن ربهم من كل أمر. فرشتگان و روح در آن شب به فرمان پروردگارشان برای انجام هر کاری نازل میشوند سلام حتى مطلع الفجر آن شب تا طلوع فجر سلامتی و رحمت باشد بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان لم یکنین الَّذِينَ كَفَرُوا من أَهْلِ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ منفکین حَتَّى تَأْتِيَهُمُ البین کسانی که کافر شدند از اهل کتاب و مشرکان از آین کفت دست بردار نبودند تا اینکه برای آنها دلیل روشنی بیاید من الله پیام بری اصول خداوند بیاید که صحیفه پاک را بخاند کتب و در آن صحیفه ها استوار و درست است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 إلا الله له الدين حنفاء و, و, و, دين و آنان فرمان نیافتند جز اینکه خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص گردانند و از شرک و بدپرستی به توحید و دین ابراهیم روی آورند و نماز را بر و زکات را بپردازند و این است آیین راستین و مستقیم این الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها که هم شر بیگمان کسانی که کافر شدند از اهل کتاب و مشرکان در آتش جهنمند که در آن جاودانه خواهند ماند آنان بدترین آفریدگان هستند ان الذين وعملوا الصالحات هم کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایست شایسته انجام دادند آنها بهترین آفریدگان هستند جزاء أَهُمْ مَعِينُ دَرَبِهِمْ جَنَّةُ عَدْنِ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَ الرَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ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 بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ازا زلزلت الارض زلزالها هنگامی که زمین با ترین لرزه هایش به لرز در آید و اخرجت الارض و زمین بارهای سنگینش را بیرون ریزد وقال الانسان ما لها و انسان گوید آن را چه شده است؟ یوم تحدث اخبارها در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو می کند بی ان ربک زیرا که پروردگارت به او چنین این وحی و حکم کرده است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 ضبحا. سوگند به از پای دونده که نفس زنان به سوی میدان پیش میرفتند قدحا. و سوگند به اسبهایی که در اثر استکاک سمشان با سنگ ها جرقه آتش ایجاد کردند باز سویند به عصبهایی که در صبح گاهان بر دشمن یورش برند فأثرن بهی نقعه پس در آن هنگام گرد و غبار برانگیزند فوسطنا بهی آنگاه به میان جمع درآیند و آنها را محاصره کنند این الانسان لربه لکنون محققا انسان در برابر نعمت های پروردگارش بسیار ناسپاس است و این على لشهید. و بیگمان او بر این ناسپاسی جواه است و این الخیر لشدید. و هماننا او علاقه فراوان و شدیدی به مال دارد. افلا یعلم اذا ما في آیا او نمیداند که چون آنچه در گور هاست همه زنده و برانگیخته شوند و حصی لما فی الصدور و آنچه در سینه هاست همه آشکار گردد ان رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ خَبِيرٌ یقیناً <سؤال> در آن روز پروردگارشان به و حال آنها کاملاً آگاه است بسم الله الرحمن الرحیم <سؤال> به نام خداوند بخشنده مهربان القارعه ملقارعه چیست آن فروکوبنده؟ و ما ادراک ملقارعه و تو چه دانی که آن فروکوبنده چیست؟ یوم یکونن الناس کالفراش روزی که مردم مانند پروانه های پراکنده خواهند بود وَتَكُونُ الجبال كَالْعِهْمِ الْمَنْفُوشت و کوها مانند پشم رنگین حلاجی شده خواهد بود فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پس اما هر کس که در آن روز کفه میزانش سنگین باشد فهو فی در یک زندگی خوشنود و ای خواهد بود و اما من خفت موازینهم و اما هر کس که کفه میزانش سبک باشد و پس مسکن و پناهگاهش هاویه است و ما, ما هی تو چه دانی آن هاویه چیست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 باز همچنین نیست به زودی خواهید دانست كلا لو تعلمون نیست که شما گمان می اگر شما به علم یقین حقیقت قیامت را میدانستید از افزون تلبی و تفاخر به مال و فرزند دست بر می <تصفيق> سوگند که دوزخ را خواهید دید سپس سوگند که آن را با چشم یقین خواهید دید ثم لا تسالن يومئذ نعيم انگاه حتما در آن روز از همه نعمت ها بازخواست شد بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان والعصر ان الانسان لفي خسر سوگند به عصر که انسان در زیان است الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مگر کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده اند و یکدیگر را به حق سفارش نموده و یکدیگر را به صبر توصیه کرده اند اه الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان لکل وای بر هر غیبت کننده و عیب جوی الذی جمع مالا وعدده همان کسی که مال فراوانی گرد آورد و آن را شمارش کرد یحسب ان ما اخلده گمان میکند که مالش او را جاودانه میسازد کلا لَيُنْ بَذَنَّ فِي هرگز چنین نیست که او گمان می قطعا در آتش در هم کوبنده انداخته خواهد شد وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُقَمَةِ و ای پیامبر تو چه می دانی که آتش در هم کوبنده چیست؟ نَا اللَّهِ آتش برافروخته الهی است تطلع علی آتشی که بر دلها چیره می‌گردد و می‌سوزاند انها علیهم مصده بیگمان آن آتش بر آنان فرو بسته و از هر سو محاصرهشان کرده است ممدده افروخته در ستونهای بلند است بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل آیا ندیدی پرورگارت با اصحاب فیل چه کرد؟ آیا فریب و نقشه آنان را در تباهی قرار نداد؟ و, من سجیل و پرندگانی گروه گروه بر سر آنان فرستاد که با سنگ گل که در منقار و چنگال لاشتند آنان را سنگ باران می کردند فجعلهم کعفت مأکول پس آنها را همچون کاه جویده شده ساخت بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان لئیلات قرنش برای الفت و انس قریش همان الفت آنها در سفرهای زمستانی به یمن و تابستانی به شام پس پس باید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 بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان ارایت الذی یکذب ای پیامبر آیا کسی که روز جزا را تکذیب میکند دیده‌ای ای؟ الذی يدح الیتیم پس او همان کسی است که یتیم را با خشونت از خود میراند راند و دیگران را به اتعام بینوا و مستمند ترغیب نمی فویل للمصلین پس وای بر نماز گذاران اللذين هم عصلاتهم ساون همان کسانی که از نمازشان غافلند. اللذين هم يراآون کسانی که خود نمايی میکنند. ويمنعون الماعون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 اذا جاء نصر الله والفتح ای پیامبر هنگامی که یاری الله و پیروزی فرا رسد و رایتنا سيدخلون فی دین الله افواجا و مردم را ببینی که گروه گروه در دین الله داخل می شوند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 به نام الله بخشنده مهربان تبت ادا لهب و باد هر دو دست ابو لهب و هلاك باد ما عنه ماله و ما كسب مال و ثروتش و آنچه چه به دست آورده بود او سودی نبخشید سیصله نارا ذات لهب به زودی به آتش شعلهور در خواهد آمد و حمالت الحقب. و همسرش ام جمیل آن هیزم نیز وارد آتش می شود فی جیدها حبل من مسد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 قل ای پیامبر بگو به پروردگار سپیددم پناه میبرم من شر ما از شر تمام آنچه آفریده است و از شر غاسق اذا وقب از شر تاریکی شب آنگاه که همه جا را فرا گیرد و من شر نفافات فی و از شر زنان جادوگر که با افسون در گره ها می دمند. و من شر حاسد اذا حسد و از شر حسود آنگاه که حسد ورزد بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان قل اعوذ بربنا ای پیامبر بگو به پروردگار مردم پناه میبرم بلکه الناس فرمانروای مردم معبود مردم من شر از شر شیطان وسوسگر که به هنگام ذکر الله پنهان می گردد الَّذی فی همان که در دلهای مردم وسوسه می من الجنت و النار. از جنیان باشد و یا از آدمیان